حج هر چی هم بیگیم در زبان نگون جد باید هر کسی خودش بره بیبینه بیاد چون اللہ رب العالمین هم می که خود تم بیره نگاه کردی حج شعائر الله اونجا هستند. یادگارهای حضرت ابراهیم علیه صلات و السلام و انبیاء علیه و صلات و السلام که اونجا حج کردن هر چیزی هر دره و کوهی داره پیغامی هست از انبیاء و اثرات مجاهدت های انبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام از هر چیز مکه مکرمه نور می درخشه مکرمہ مکرمه و مدینه منوره در توصیف زبانها نمی آین شهرهای بی آبی علفن بخصوص مکه مکرمه الا زمزم آب غرزون ندارد آبهاش ها شهره البیرون تعمید میشه هست خیلی محدود کم چاه داخل مکه اما خیلی کم چا زمزم خود زمزم یعنی آب کثیر ایمانش آب کثیر هم هست و معنی بعدی که حتی نتردن هم هست خود زمزم یکی از های بزرگ الله رب العالمین هست که بیش از چهار هزار پونسد سال است که نیجوشد و هر دقیقه هفت لیتر برداشت می شود کل حجاج میخورن به مدینه طیبه انتقاد آده میشه شود شرکت ها بسته بندی حجاج می آورن. اما توان شدنی نیست چشمه خود زمزم از طرف حجر اسوال هست چشمه بزرگ از اون طرف می آین خیلی کسی است که الله رب العالمین اونجا گذاشته و در حدیث داریم که زمزم تو و تومین و شراب و شرب و شفا و صغمین هم غذا هست و هم شفا هست و هم شراب هست آب زمزم مانند آبهای معمولی نیست ترکیب زمزم و ترکیب آبهای معمولی فرق می کری. ترکیباتون بیشتر ترکیب آبهای معمولی هست او رقاقون تشکیل تا بیشتر نیستن اما زمزم بیشتر بالاتر از زینه هست دیدن خود زمزم این است که هرکی هم بخوری اگر در یک وده موامن زیاد میتواند بخورد موامن زیاد میخورد منافق نمیتوانه آب زمزم بخورد با یک کمی هم دلش میگیره. بیگه نمیتونه بخوره. موامن وقتی میری میخوره. حتیل علا دوستان بودن ده لیوان ایجا هم بخور، اصلا هیچ صبح صبح. تا هر بیشتر سعی میکنن. عجیب تر اینه که این بازده امروز داره که دوباره دف به دف نمیشه، کل زمزم جذب بدن میشه. اونها زمزم میخورن، در هر داخل حرام کیمیران طبعا میروند، شاید پونزده تا پونزده، هفت تا بیست لیوان بخورن همه چند بار رزو می گرن؟ ایک بار نیاز پیدا نمیشه کل جذب بدن میشه چیز بسیار عجیبی هست بیت الله اولین بیتی و اولی بنایی در زمین بنا شد ابر زمین نهاز شد بیت الله هست خود الله رب العالی در قرآن بیار میکنه. اولین بنا در زمین بیت الله گذاشتیم ما. بیت الله یک چیز بسیار عجیبی هست اولین است که ما بیت الله رو سجده نمی کنیم. به طرفو سجده می کنیم. خود سجده نمی کنیم. جز حجر اسود هیچ جایز نمی بوسیم. جایز هم نیست. اون تیکر وقت نبی کریم می بوسیم. که شفتهای نگراوی نبی کریم وارد افتاد بیا. به عشق نبی کریم می بوسیم. خود هیچ کاری نمیتونه بکنه. این فهمیه است. چیز خاصی هم اونجا نیست. به طرفو نماز می به طرفو سجده می کنیم که الله رو سجده می اما ازید جذابیت بسیار عجیب و خروج عجیبی داره بیت الله در مکه مکرمه هر داخل مکه بمونی تمانای رفتن بازار پیدا نمیشه به اجبار گاهی دوستا میگن برین بازار چیزی بخرید مجبورش حال برین حتی بصیر قضا ی هتل باشه صد تمانا نمیشه هتل بسیار شکی و هست طوری بسیار پیشرفته این هتل‌ها جهانی هیلتون است و چیزای از این هتل‌های جهانی اونجا است اما هرگز تماننا نمیشه ایک برای داخلش سریعتر برین حرم بهت الله این سنگ سیاه پرده سیاه آن جذب سیاه عجیبی داره هم رفتنش در داره هم دلکندن در داره که هم شوق دیدار دیدارش عشق میریزه هم درد فراغش عشق بیرو میعورد خیلی هست اونجا با درد و سود از اونجا میشن عشق اما نمیده جز از بیت الله رو ام باید جدا بشه افرادی بی اونجا میبینید از کجاها اومدن میرن نگاه میکنند من دیگه میرن میرن نگاه میکنن تا از بیت الله جدا میشین مدینه طیبه همین سوره شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم آرامگاه نبی مکرم صلی الله علیه و سلم جایی که ده هزار صحابی داخلون خوابیدن جایی که ده سال جبهی بر وسلم اومد جایی که تا انوارات لبر بر قبر نبی کریم میبارد از آرامش خاصی برخورداره بر دین تیبه آرامش خاصی برخورداره عجیب هست بسیار عجیب هست ان هر حال باید هم فصار داره هم فصار داره هم واسد بشه هم باید میش از اونجا جدا بشه این درک زمانی هست که بری ببینید خود رو ببینید قدم قدم بیت الله قدم جا جای بیت الله جا جای مکه مکرمه جای مختلف و دیره تییبه حمد بکنید اراده بکنید جمع کنید برید در جوانی دیدر استفاده دارید پیری نمی توانید پیری یا شکستوی یا ناتوانید بیت الله بری نگاه کنید اراده کنید مامیرم اونجا رو و تا زمانی که همت و اراد باشی نمی رسیم ایک ای ای از بزرگ تعریف می کرد که ایم ای رفتم هجم اصلاق محترم ورن مفتی عمر رفی اسمانی اکفزه اللہ تعالی پدرم رفت حاج وقت داشمیره گفت پدرجم برای من دعا بکن می برم گفت نت تو علاغی نداری گفت علاغی دیوانیم می بی ببینم هر انسان میخواد خیر ببینم هر انسان می خیر رو روینم گفت که خو اگه واقعا محبت داری عشق علاقه داری چقدر پور جمع کردی گفتم مگه چقدر درآمد دارم درامت فقط چند, چند روپی بیشتر نگو. کو ازین روپی می اما به قول مای رنش ریال اگه بسلا هزار تومن ده هزار ریال هست هز، چند ریال جمع کردی از غیر دقیق هزار تومان ماهانه جمع کن، دو هزار جمع کن، هم پول حج منه؟ خدا می‌بره، خدا می‌بره. بعد گفت که نگاه کن،, کن این هم قلکی از خواهرت حقوق می‌گیره، مقداری از حقوق داخلی قلک می‌دی. و بالایش نوشته بود که این پول حج منه هست. تو وفات کرد، هیچ کس ما و خبر هم نبود. خدا پول ها رو گرفت و ورد مات کم اونجا گفت به کسی حجر کن از طریفت دخترم و سواب اون ببخش بعد بردن حجی اون شد پول جمع کودی خدا میبره. خود بندی همی کار رو کردم استاد محترم وقتی چیزو فرموده بعدی اومدم اینجا همی کار کردم با اون پول نرفتم نه با اون نرفتم اما با همون اراده رفتم از اون اصفاق یک اصفاقی نشو از اون یک اسفا اصفاقی نشو اما الحمدلالله رب العالمین پنج بار نصیب کرد اراده کردم این چیز کردم حتی برای خیلی سوال بود بایی میشه گفت خدا میبری اکثر چیزایی که رفتم بدون هزینه من بودن از غیف تا... که شخصی خاصی هم بده دید. از غیف تامین شده چه اراده میخواد اراده رو قوی کنی خیلی ها از ما راها رو را مستود میبینی فکر میکنی اگر نمیشه اگر نمیشه, اغا نمیشه. نر... نه جواز داری، نه پاسپور داری، نه امکانات داری، نه موقعی مجال می نه شغل ما ایجاب می کنه. اما خدا میگه گی می برم خدا می برم سالی ما من می برم برای من زن زدن که بیاس اصلا خوابش ندیده بودم ستو اراده ام نبود. خودش تماس گرفتن بیا بدون پولی که خرج کنم، یک خرج نکردن کارت اومد رفتن گفتن که اله برگرد برو باید گروه چونکه همون مسئولی که علا نمیرم ودا نمی‌نام بیزار هرچی بیکنه بیکنه چون من یاز بین ندارم که علا خوبیه رفته منجا قرار کرده ی دوای خون داخل تو اغراق رفته استن ست بردن نکر سریج پایین بود امضا کردم استن نگاین نکر اون وقت کاره قرار داشت همون سال همون سال خواب در رفته مدنی منابره که نبی کریم صلی الله و سلم خواب داشتم قم ودا مدنی منابره طولانی بود اسخا فریدان گفتم میرم حاج فوران کار دروست داد پول تا حتی نه پول اخسی دادم نه کرای دادم نه خرابودی الله دروست کرد بوردو آورد شد اراده نیخات بدون اراده نمیشه اراده غوی کنی از امشب کین جان شستی راضه باید ما مکرو ببینیم باید بدی ببینیم هرچی پول هم هسته جیبداری دهلا رفت خونه جدا کنی بزاری برای حاج زیاد هست کم هست همین پول جیب داخل جیب داری بدون استثنا هر چن باشه کم هم واس الله قبول میکنه زیاد سن قبول اراده کنه رفت خون جدا کنه تو قله گوزا به خونه پول حج मारे شای امن به اما همش مری نشید از خنده های خانوها الله میبره مطمئن باشی الله میبره